صفحه 420 او کسی را نکشته است من این گوزکشته بدبخ را ام دکتر یهودی پس از بیان این سخنان خود را به زیر چوبه دار رسانید و گفت طناب دار را به گردن من ببندید و مرا از عذاب وجدان آسوده سازید داروغه ناچار شد برای تعیین تکلیف و رعایت عدالت پزشک یهودی را نزد قاضی ببرد پزشک یهودی به قاضی گفت مسئول خوشش شدن این گوش پشت من هستم. زیرا شبه گذشته که من در خانه بودم، خدمتکارم به من خبر داد که یک زن و مرد بیماری را به خانه من آوردند که به شدت بیمار است و تقاضا کردند که من از بیمار آنها دیدن کنم و دستورات پزشکی بدهم. زنن یک سکه طلا هم به عنوان حق و زحمه به من پرداخت کردند. در این فاصله که خدمتگار من مشغول رساندن پیغام آنها به من بود، آن زن و مرد بیمار خود را به داخل خانه آورده و او را تا سر پلخان می و همانجا میگذارند. وقتی من در تاریکی با عجله به سر پلخان رسیدم و می‌خواستم بیمار را ببینم که ناگهان با بیمار برخورد کردم و در نتیجه بیمار به انتهای پلخان افتاد وقتی خدمتکار چراغ آورد متوجه شدم که بیمار مرده است و او را شناختم که از مسلمانان است و گوش پشت هم هست بسیار ناراحت شدم و من و همسرم جنازه را به پشت بام بردیم و از دهانه هواکش همسایه خودمان که او هم مسلمان است به کمک تناب جنازه را پایین فرستادیم و او را به حالت ایستاده قرار دادیم مباشر همان همسایه مسلمان ما به خانه می آید و گوش را داخل انبار خانه می بیند و همانطور که قبلا شرح داده شد رفتار می کند و جنازه را در کنار دکانی قرار می دهند. بنابراین من گوش بش را کشتم که سخنان پزشک یهودی را میشنود یقین حاصل می کند که مباشر بی است و تناب دار را به گردن پزشک یهودی می اندازد. اما در لحظه حساس خیاط فریاد کنان خود را به پای طوبه دار می رساند و به نحفی که قبلا بیان کردم واقعی را برای نماینده داروغه توضیح می دهد و خود را گناهکار معرفی می نموید. قاضی و سایر کسانی که در محل بودند اظهارات هر کدام از اشخاصی را که می‌کوشید، دیگری را بی گناه و خود را گناهکار معرفی کند شنیده بودند از حیرت و شگفتی همه در بحت فرو می رفتند انگاه قاضی دستور داد خیاط را که آخرین نفر به شمار می رود و فوت گوشپشت هم در خانه او اتفاق افتاده بود تسلیم چوبه یه دار کنند سپس دستور داد که این واقعی بی سابقه را با طلاب ثبت برسانند. تا همواره باقی بماند بعد از اون که دار را به گردن خیات انداختند در این موقع سلطان دستور داد تا دلقه مخصوص خود را که همان گوش پشت بوده و سلطان از مرگ او بی خبر بود به حضورش بیاورند در این هنگام یکی از افسران حاضر به عرض سلطان می که گوش پشت مخصوص سلطان شبه گذشته شراب بسیاری می نوشد و برخلاف روش همیشگی خود از قصر به شهر می‌رود تا تفریح و گردشی کند و امروز صبح جنازه او را در خیابان پیدا می‌کنند. بعد از این سخن سلطان دستور می‌دهد خیاط پزشک یهودی مباشر و بازرگان عیسپی را نزد او آورند. آنگاه همه را مخاطب قرار می‌دهد و می‌پرسد شما سرگذشتی تر از سرگذشته دلغک مخصوص من شنیده اید آنگاه بازرگان عیسپی می‌گوید ای سلطان بزرگوار من داستانی میدانم که براتب شنیدنی تر از سرگذشته دلقه مخصوص شماست و با اجازه شما آن را بیان میکنم داستان از این قرار است حضرت سلطان قبل از بیان این سرگذشت باید بگویم من از اهالی این شهر نیستم و در شهر قاهره در مصر به دنیا آمدم و مصری تبار می باشم و دین مسیح را تدریس میکنم پدر من یکی از دلالان بزرگ معاملات بزرگانی بود و املاک و دارایی بسیار داشت و هنگامی که از دنیا رفت دارایی بسیاری برای من به ارث باقی گذاشت من هم پس از مرگ پدر همون پیشه او را دنبال کردم و به کار دلالی کالاهای بازرگانی پرداختم روزی در مرکز و سترد غلات و گندم در شهر قاهره ایستاده بودم جوان آرستهی که بسیار خوش پوش بود و روی اسبی نشسته بود به سوی من آمد و از جیب خود دست مالی بیرون آود و گفت این نمونه است که می خواهم در این بازار به فروش برسانم. می مشتری خوبی برای آن معرفی کنی. من نمونه را نگاه کردم و گفتم هر دوازده من آن یک درهم نقره ارزش دارد و به این قیمت آن را خواهم فروخت. او هم گفت بسیار خوب موافقم. همین که مشتری پیدا کردی می توانی به خانه من واقع در دروازه پیروزی محلی که به صورت خانه روستایی است و با سایر خانه ها فاصله دارد مراجعه کنی. من هم پس از چند روز خریداری پیدا کردم و حاضر شد هر دوازده من را به قیمت 110 درهم نقره خریداری کند. در واقع ده درهم وابت حق دلالی من و مال من میشد. بعد از به آوردن مشتری فورا به خانه آن جوان رفتم وی را به انبار قلی خود برد و حساب کردم که او برابر یک هزار و من قله در انبار خود دارد. جوان گفت وقتی قلی ها را فروختی بهای آنها را نزد خود نگهدار و یکصد و هشتاد درهم خودت را هم بردار. من فعلا نیازی به بهای قلی ندارم. می دانم تا آدم امینی هستی و هر وقت لازم دانستم برای گرفتن پول به سراغ تو خواهم آمد. من هم پاسخ دادم هر موقعی که بیایید پول شما حاضر است و به شما خواهم داد. یک ماه از این قضیه گذشت. پس از آن روزی در دکان خود نشسته بودم که جوان سوار بر اسب نزد من آمد و چهار هزار و پانسد درهم از من پول خواست. گفتم پول حاضر است. شما لحظه از از پایین بیایید و با نوشیدن شربت گلوی خود را تازه کنید و من هم سکه نقره را به شما میدهم او گفت فرصت ندارم و برای انجام کاری در همین نزدیکی ها باید بروم ولی در آینده خواهم آمد و پول را از شما میگیرم و پس از گفتن این سخن به راه افتاد و رفت اما یک ماه بعد از آن تاریخ دوباره نزد من آمد در این فاصله پول در نزد من بود و فهمیدم که تاجر جوان به من اطمینان کامل دارد و وجودی که او مرا نمیشناخت حاضر شده بود آن همه پول در نزد من بماند و شاید اگر شخص دیگری غیر از او بود چنین اطمینانی به من نمیکرد و پول خود را هرچه زودتر پس میگرفت مرد جوان باز هم در دفعه دوم پول را نگرفت و فقط نزد من آمد و پس از سلام و تعارفات از من خداحافظی کرد و رفت تا آنکه یک ماه بعد نزد من آمد هر بار لباس‌های او زیباتر از دفعه قبل بود. جلو رفتم و خواهش کردم تا از اسب پیاده شود و لغم غذایی با من بخورد و مرا خوشحال سازد. او گفت: من برای پول نیامده ام و با لحن بسیار دلپذیر و با وقاری گفت: خواستم شما را ببینم و من نگران پول خود نیستم، زیرا اطمینان دارم شما شخص قابل اعتمادی هستید و پول خود را در نزد شخص شریفی گذاشته ام. از این گذشته در حال حاضر به این پول نیازی ندارم. هر موقع که پولهای موجودم تمام شد حتما سراغ شما خواهم آمد که آن را پس بگیرم. آنگاه جوان با من خداحافظی کرد و رفت ولی گفت اواخر هفته آینده به دیدن من خواهد آمد. بعد از رفتن جوان با خود گفتم معلومم نیست که او درست در اواخر هفته آینده بیاید. ممکن است مدت‌ها بگذرد و او نیاید. پس بهتر است فعلا از این پول استفاده کنم. یک سال از آخرین دیدار جوان با من میگذشت و هنوز خبری از او نداشتم. تا آنکه پس از این مدت دراز روزی او را دیدم که با لباسی بسیار برازنده مرعص به خود سوار است و زیباتر از همیشه با سیمای دلپذیر خود اسب را به سوی من آورد. اما چهره او گرفته و درهم بود. به نظر می آید که درگاری مطلبی به فکر فرو رفته است. او گفتم پیاده شو و ساعتی را با هم گفتگو کنیم و غذایی بخوریم این بار گفت بسیار خوب ولی به شرط آنکه نخواهی از من پذیرایی کنی گفتم شرط تو را قبول کردم جوان از, از پیاده شد و با من به دکانم آمد و نشست من هم غذایی آوردم و به اتفاق مشغول خوردن شدیم در این هنگام متوجه شدم که با دست چپ خود غذا بر می دارد و بعد دهان میگذارد. بسیار تعجب کردم و با خود گفتم آیا این جوان عمدن با دست شب قضا برمیدارد که مرا خفیف کند و نوعی بی حرمتی نشان دهد؟ بعد بیشتر فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که دلیلی ندارد چنین قصدی درباره من داشته باشد زیرا او همیشه با ادب و رفتاری محترمانه با من برخورد کرده و امروز هم در کمال احترام با من رفتار کرده است. بعد از آنکه قضا خوردن ما به پایان رسید برای بعد از قضا شیرنی لطیف و مخصوصی را آوردم و به او تعارف کردم. باز هم با دست چپ خود آن را برداشت و بر دهان گذاشت سرانجام با ادب و احترام به او گفتم میخواستم از شما بپرسم چرا با دست چپ خود قضا میخورید؟ از پرسش خود مذارت میخواهم و مرا خواهید بخشید آن وقت جوان آهی کشید و آستین راست خود را بالا زد و متوجه شدم که دست راست او را قطع کرده ان. سپس جوان گفت حتما شما تعجب می کردید که چرا تا به حال همش دست شب خود را به کار می بردم ولی حالا ملاحظه می کنید که جز این ای نداشتم از او پرسیدم چه پیش آمدی سبب شد که دست راست خود را از دست بدهید در این لحظه با شنیدن این سخن به گریه افتاد و گفت برای آگاهی از این موضوع لازم است سرگذشت خود را تعریف کنم و چنین گفت. من از اهالی شهر بغدادم و فرزند یکی از بزرگان و ثروتمندان شهر بودم که از لحاظ ثروت نیکنامی و شخصیت شهرت فراوانی داشت. من در دوران نوجوانی با افرادی روبرو شدم که بسیاری از کشورها را دیده بودند و از دیدنی های شهر قاهره برایم تعریف ها کرده بودند و همیشه دلم می‌خواست که سفری به آن شهر بروم و از دیدنی‌های حیرت‌آنجز آنجا دیدن کنم. اما پدرم با مسافرت من به خارج مخالف بود بعد از فوت پدرم صفت بسیاری به من رسید و من هم آرزوی ام را عملی کردم بدین منی که بهترین اجناس و کالاهای بقداد را تهیه کرده و برای داد و ستت با خود به قاهره بردم بعد از اون که با کاروانی به قاهره وارد شدم در کارمان رفتم و محلی را برای کالا و محلی هم برای سکونت خود اجاره کردم البته پول فراوانی در این سفر به همراه داشتم. کاله هایی را که بر روی دوش شطور آورده بودم همه را در انباری که کرایه کرده بودم جای دادم. خدمتکارانی هم با خود آورده بودم که از من پذیرایی میکردند. تهیه غذا و نضافت و رسیدگی به امور روزانه به آنها بود. بعد از افتراحت و رفع خستگی سفر به بازدید آثار تاریخی و بناهای مشهور پرداختم. در یکی از روزها چندین بسته بزرگ از کالاهای گرانبها و کمیابی را که با خود آورده بودم از سایر کالاها جدا کرد و توسط غلامان خود به بازار کالاهای گرانبها هم کردم. در آن بازار بسیاری از دلال‌های دادو ستد بازرگانی و واسطه‌ها که از ورود من به آنجا آگاه شده بودند، دورم جمع شدند و نمونه‌هایی از پارچه‌های گرانبها و سایر کالاها را از من گرفتند تا برای آنها مشتریانی فراهم کنند. و حق و زحمهی خود را از من دریافت نمایند اما پس از مدتی که در گوشه و کنار به فعالیت پرداختند سرانجام نزد من آمدند و گفتند مشتری پیدا نکردیم من تعجب کردم و پرسیدم بهترین راه برای به دستاوردن مشتری جهت این کالاها کدام است آن وقت واسطه ها و دلال ها گفتند اگر می‌خواهید در فروختن کالاهای خود زیانی متوجه نشود، بهتر از حال کالاهای خود را بین چندین واسطه سرشکن کنی و به هر کدام مقدار معینی از آن را بسپاری تا آنها مستقیما با خریداران روبرو شده و آن را به فروش رسانند و تا هفته‌ای دو بار در روزهای دوشنبه و شنبه برای دریافت پول خود به آنها مراجعه کنی. با این ترتیب هم کالاهای های خود را به قیمت خوب به فروش میرسانی و هم آنکه فرصت کافی برای گشت و گذار در اطراف رودخانه نیل و بازدید اماکن عمومی و سرگرمیهای گوناگون مصر برای فراهم خواهد شد. من هم به همین ترتیب که پیشنهاد شده بود دفتار کردم و کالاهای های خود را به مرکز معاملات کالاهای های ها منتقل کردم و در بین واسطه معتبر و خوشنام تقسیم نمودم و آنها هم در حضور چند نفر شاهد به من رسید دادند و من هم قبول کردم تا بعد از یک ماه از آن تاریخ برای دریافت بهای آنها از محل فروش به واسطه ها مراجعه کنم کارهایی که به این ترتیب آماده و مرتب شد خیالم آسوده گردید آن وقت به سایر امور پرداختم و رفته رفته دوستان بسیاری اطراف مرا گرفتند که شاید نشینی با آنان در سن من برایم زیاد پسندیده نبود پس پذیر شدن اولین ماه من به همراه ممور دولتی به منظور بازدید ارقام فروش و اطمینان بر درستی ارقامی که در دفترهای فروش واسطه ها دیده میشد به آنجا رفتم و در این حال مموری هم که آشنا به امور پولی بود با خود بردم تا معلوم شود پول های خریداران پول های معتبر و قانونی است و کار بدون ایراد انجام گردیده است از آن پس هفته دو روز به مرکز معاملات می رفتیم و پول فراوانی به دستم میامد که به خانه خود که در همان کار بود می بردم و در صندوق نگهداری می کردم به غیر از روزهایی که برای جمعآوری فروش کالاها به بازار می رفتم، سایر روزهای هفته هنگام صبح به دیدن بعضی از بازرگانان و سایر افراد می رفتم و گاهی هم در همان مرکز تجارتی به گردش و تماشای داد و ستد بازرگانان می پرداختم در یکی از روزها که در دکان بزردین یکی از بازرگانانی که پارچه هایم برای فروش نزد او بود نشسته بودم ملاحظه کردم که بانوی جوان ای که نقابی بر چهره داشت ولی با ناز و خاصی راه میرفت و کنیزه که هم به همراه داشت وارد دکان بازرگان شد و چون کبک خرامان به سوی من آمد و در کنارم نشست این بانو و کنیزه که همراه او لباس بسیار زیبا و تمیزی پوشیده بودند. و عصر خوشبویی از آن بانو به مشا میرسید ظاهر بسیار آرستش همراه با لطف و زیبایی حرکات او که از زیر چادرش نمایان بود نظر هر بیرنده را به خود جلب میکرد من بسیار میل داشتم که درباره این بانوی با و رو با شخصیت اطلاعات بیشتری به دست آورم. آنگاه بانوی جوان با صدای بسیار دلنشینی به بازرگانان گفت پارچه عبریشنی می که زمینه آن با تارهای طلا بافته شده و گلهای زیبا روی آن کار شده باشد. بازرگان پارچه های مختلفی به بانوی جوان نشان داد تا سرانجام پارچه دلخواه خود را یافت و قیمتش را پرسید. من آرزویم این بود که این بانو متوجه من و علاقه من نسبت به خود میشد و در حالی که تمام حواستم متوجه او بود ناگهان نقاب خود را یک لحظه بالا زد و چشمان سیاه زیبایش را دیدم در همان لحظه چشمان گیرا و آهوی او مرا افسون کرد و در یک نگاه گرفتار عشق او شدم بانوی زیبا قیمت پارچه را از بدردین پرسید و او هم پاسخ داد یک هزار و صد درهم نقره با شنیدن مبلغ بهای پارچه بانو پاسخ داد قبول دارم ولی پول به این مقدار همراه ندارم اگر موافق باشید پارچه را بردارم و فردا صبح پول آن را برای برایتان بیاورم برجدین بازرگان پاسخ داد ای بانوی بزرگوار من شما را قبول دارم و سالهاست که مشتری من هستید و اگر این پارچه متعلق به خودم بود تقدیم می کردم ولی این پارچه متعلق به آن جوانی است که در آنجا نشسته است خانم با شنیدن این سخن بر اشفته گردید پارچه را به سوی پرتاب کرده و گفت شما بازرگانان شرمحیا ندارید همهتان مثل هم هستید و احترام و آبروی اشخاص را رعایت نمی کنید بانوی جوان این سخنان را گفت و با حالتی برافروخته از دکان خارج شد وقتی من دیدم بانوی جوان با این حالت از دکان خارج شد بسیار ناراحت شدم و گفتم ای بانوی عزیز به خاطر من برگردید و بر من مندت گذارید و این پارچه را بردارید آنگاه بانوی جوان درخواست مرا پذیرفت در حالی که می گفت فقط به خاطر شما و احترام درخواست شما به دکان برمیگردم. به برجدین بازرگان گفتم معادل یک هزار و یکصد درهم از جمع حساب من کسب کن و پارچه را به این بانوی بزرگوار بار تسلیم کن او هم بدون معطلی همین کارا کرد در این موقع به با آن بانو گفتم شما پارچه را با خود به خانه ببرید و بهای آن را فردا صبح در همین جا بپردازید و یا چنانچه موافق باشید این پارچه را به عنوان پیشکشی از من بپذیرید بانو جوان پاسخ داد من نمی زحمتی برای شما پیش آورم از بزرگواری آقای شما متشکرم نمیدانم چگونه سپاس گذاری کنم خداوند عمر دراز و با احترام به شما دهد و همیشه پیروز و تن روز باشید رفتار محبت میزتان سخت مرا شمند ساخته است سخنان بانو مرا به محبت او امیدوار ساخت و در پاسخ او گفتم من در برابر شما انتظار هیچ پاداش و یا تشکری را ندارم فقط زیارت روی شما بهترین نعمت ها برای من به شما می آید هنوز سخنانم تمام نشده بود که بانو به من نزدیکتر شد و نقاب خود را کاملا بالا زد صورت زیبای او را که دیدم از خود بیخود شدم زیرا زیبایی خیره کننده و چشمان قشنگ و درشتش و های برگشته و بلند او که چون خنجری در دلم شد به کلی مراده گرگون کند. من آنچنان تحت تأثیر زیبایی او قرار گرفته بودم که حقیقتا خودم و دنیا را فراموش کردم. زیبایی فوقالعاده این بانوی جوان را نمی توانم تشریح کنم. آرزو داشتم که تا پایان دنیا همچنان او را نگاه کنم و لذت ببرم زیرا هرگز از دیدن او سیر نمی چونم. اما فکر کردم ممکن است دیگران متوجه نگاه عمیق من به این بانو شوند و به عشق آتشینم پی ببرند این فرشته زیبای زمینی ناگهان نگاه خود را از من برگرفت و نقاب را پایین آورد و چهرهی زیبای خود را چون خورشید تابان در زیر ابر تاریک نقاب پنهان کرد و طرقه دلخواهش را داشت و سبک بار از دکان خارج شد و مرا در دنیای تازه‌ای پرواز داد چند دفعه گیج و به بودم فکرم درست در اختیارم نبود. آنگاه از بدردین بازرگان پرسیدم آیا تو این بانو را می شناستی؟ پاسخ داد آری. این بانو دختر یکی از امیران این شهر است که پس از فوت پدر ثروت و دارایی فراوانی به او رسیده است. من از نزد بدردین به خانه برگشتم و نتوانستم غذایی بخورم و تمام شب را در فکر این بانوی زیبا و خوشبیان و تناز بودم و از خود می پرسیدم مگر ممکن است که خداوند عالم همه چیزهای خوب را به یک نفر ارزانی دارد؟ آن شب دراسترین شبهای زندگی من بود. همین که صبح شد، از بستر بیرون آمدم. چس‌چویی کردم و آماده رفتن شدم تا شاید کسی که آرام و قرارم را از من را بوده بود، یک بار دیگر ببینم و محبت بیشتر او را به خود جلب کنم. لباس های بهتری از لباس های روز قبل پوشیدم و خود را آراستم. تازه وارد دکان بدرالدین بازگان شده بودم که دیدم بانوی جوان با لباس بسیار برازنده و گرانبهایی وارد دکان شد و کنیزک دیروزی هم به دنبال او آمد بدون آن که توجهی به بدرالدین کند به سوی من آمد و اظهار داشت ای مرد بزرگوار من اینجا آمدم که بهای پارچه را بپردازم و از محبت دیروز شما تشکر کنم شما بدون آنکه مرا بشناسید به, به من اعتماد کردید من چنین دفتر سخاوتمندان ای را هرگز فراموش نخواهم کرد. در پاسخ مالی جوان گفتم: من هیچ عجله‌ای در مورد پول نداشتم و از کار خود خوشنودم و فکر نمی کردم شما با این سرعت به اینجا بیایید. من از شما شرمنده ام که سبب ناراحتیتان شدم. مالی جوان پاسخ داد: در برابر محبت نباید تأخیر و بدعهدی کرد. با بیان این سخنان پولها را در دست من گذاشت و در کنارم نشست. من که فرصتی برای گفتگو به دست آورده بودم حد استفاده را از آن کردم و سریحاً عشق خود را به او اظهار کردم اما او ناگهان برخاست و بدون آنکه سخنی گوید از دکان بیرون رفت مثل آن که از صحبتهای من خوشش نیامده بود من هم با چشم او را دنبال کردم و با اجازه برد از دکان بیرون آمدم و به هدف در میان بازار به راه افتادم همینطور که در خود بودم حس کردم کسی دست مرا از پشت گرفت به عقب نگاه کردم دیدم که آن بانوست و میگوید بانوی من با شما کاری دارد و اگر می توانید میخواهد شما را ببیند و چند کلمه با شما صحبت کند چنانچه مایل باشید من شما را نزد او راه نمایی کنم من به دنبال کنیزک راه افتادم و او مرا به دکان صرافی راهنمایی نمایی کرد من با اشاره بانوی جوان کنارش نشستم آنگاه چرین گفت از اینکه ناگهان و بدون پاسخ قوی به شما از دکان بازرگان خارج شدم مرا میبخشید زیرا میخواستم به اظهار عشق شما پاسخ مثبت دهم ولی میتریدم که بازرگان متوجه شود. از اینکه فهمیدم شما مرا دوست دارید بسیار خوشحالم و خود را خوش حس می کنم که مردی به بزرگواری و شایستگی شما نسبت من عشق می میوررزد. من نمی دونم که نگاه اول من در شما چه تأثیری گذاشته است. ولی همین می دانم که من از همون لحظه نخست به شما علاق من شدم و در من احساس مخصوصی پدید آمد که فکر مرا به خود مشغول داشته است. از دیروز فقط به سخنان پرمهر شما فکر می و دیگر هیچ چیز برای مهم نیست و بهترین دلیل عشق من همین است که امروز صبح اول وقت برای دیدارتان به دکان این بازرگان آمدم. من که از سخنان این بانوی زیبا غرق در شادی و خوشنودی بودم و از عشق او نسبت به خودم خود را روی ها حس میکردم به او گفتم این لحظه زیباترین لحظه زندگی من است که این سخنان دلپذیر و آرامخش را از زبان شما می چندم. هیچ عشقی برای من بالاتر از عشق به شما نیست از همان لحظه که چشمانم به جمعان زیبای شما افتاد و چشمهای افسونگر شما مرا افسون کرد بدون کمترین مقاومتی با تمام وجود خود را تسلیم عشق شما کردم در این لحظه بانوی زیبا سخنانم را برید و گفت خوشحالم که چنین احساسی نسبت به من دارید ولی نباید وقت عزیزمان را در اینجا بیهوده بگذرانیم پیشنهاد می‌کنم به خانه من بیایید و یا اگر برای شما بهتر است من به خانه شما بیایم پاسخ دادم ای بانوی عزیز من در اینجا بیگانه ام و در کاروانسرایی محلی را کرایه کرده ام و شعن شما نیست که به چنین مخانی بیایید بهتر است که نشانی دهید تا من به دیدارتان بیایم. بانوی جوان با من موافقت کرد و گفت خانه من در است که فداکاری نام دارد و شما روز جمعه بعد از نماز ظهر به خانه من بیایید و سراغ خانه اول این را بگیرید پدر من است که رئیس کلیه عمرا بوده است و او را همه میشناسند و از هرگه بپرسید شما را راهنمایی خواهند کرد در روز جمعه در وقت مناسب خود را آماده کردم و بهتن لباس‌هایم را پوشیدم و پنجاه سکه طلا در جیب گذاشتم و اسبی کرایه کردم و با راهنمایی صاحب اسب به راه افتادم تا به خیابان فداکاری رسیدم در آنجا صاحب اسب خانه مورد نظر را پیدا کرد و به من نشان داد من هم انعام خوبی به او دادم و از او خواستم که فردا صبح برای بازگرداندن من به همان نقطه بیاید من چکش در را کوبیدم در باز شد و دکنیزک نوجوان که پوستشان به سفیدی گل یاس بود و لباس های و زیبایی پوچیده بودند، در را گشودند و از دیدن من خوشحال شدند و خوشامد گفتند. سپس اظهار داشتند بانوی ما با بی در انتظار شماست و دو روز است که فقط درباره شما صحبت می کند. من از آنجا وارد حیاطی شدم و بنای باشکوهی دیدم که در بالای هفت پله قرار گرفته بود، این بنای زیبا در وسط باغ بزرگی واقع شده بود درختان بسیاری باغ را زینت داده بودند و علاوه بر آن انواع درختان میوه بر زیبایی منظره باغ میافزود و پرندگان خوشاوا نقمههای شورانگیز سر داده بودند و در محوطه نسبتا وسیعی تپه بزرگی پوشیده از انواع گلهای رنگارنگ و, رنگ و خشبو دیده میشد که در کنار آن از نقطه بسیار بلندی آب به پایین در حوزه بزرگی میریخت و زمزمه یک نواخت آب آهنگ دلپذیری پدید آورده بود و در این حال چهار مجسمه فرشته با روکشی از طلا در چهار گوشه این حوز بزرگ بر روی چهار اجده نشسته بودند که از دهان آنها آب شفاف و زلالی با شدت به بیرون می جهید. من با دیدن این باقی با صفا و هوای خونک و مطبوع آن احساس می کردم که به پیروزی بزرگی دستی یافتم. و بوی گلهای خشبو همراه با آن صحنه زیبا حالت خوشی به من داده بود دو كنیزک جوان زیبا با مهربانی ملایمت مرا به تالار پذیرایی راهنمایی کردند که اشیاء بسیار گرانبهو و کمیابی آن را آرایش داده بودند هر هرچیز با نزد محسوسی در جای خود قرار گرفته بود یکی از آن دو نزد بانوی خانه رفت تا ورود مرا اطلاع دهد و دیگری نزد من ایستاده بود و از اینات داخلی تالار را به من نشان می داد. در همین لحظه بانوی زیبایی بغدادی در میان تالار نمایان شد که در نهایت زیبایی و آراستگی به سوی من آمد چند رشته مروارید از برگردن داشت و گوشوارها و دستبندهای الماس با درخشندگی خود چشم مرا خیره می کرد. ولی برق چشمان زیبایش درخشش بیشتری از آنها داشت که قلب مرا را روشن می کرد. بعد از انجا به تو در کنار هم نشستیم و به گفتگو پرداختیم و هر دو از یکدیگر پذیرایی میکردیم می رنگین آراسته شد نقمه سازه یکی از کنیزکان همراه با آوای خوش کنینزک دیگر شوری در فضا پرپا کرده بود بانوی زیبای بغداری هم با آوای شیرین ترانه دلنشینی آغاز کرد که پود وجودم را به لرز درآورد. در این حانت خوش و بیخبری شب را به صبح رساندیم. صبح که از خواب برخواستم کیسه زر را که پنجاه سکه در آن بود زیر بالش گذاشتم. بانوی زیبا از من پرسید کی دوباره نزد من خواهی آمد. به او پاسخ دادم قول می دهم که همین امشب به دیدارت بیایم. از چنیدن سخنم بسیار شاد شد و مرا تا در خروجی همراهی و خداحافظی کرد. از خانه که خارج شدم درست در همان محل دیروزی، همان مدی را دیدم که با او قرار گذاشته بودم در ساعت معین برایم اسب آورده بود. من هم سوار اسب شدم و مستقیما به خانه خود.